این آبشار خیلی زیباست. لباسم مرطوب شده است. می‌بینی ذرات آب آبشار چطور در هوا پراکنده می‌شوند؟ چه جای خوبی است. همه جا سبز است و بوی گل همه جا را پر کرده است. اینجا همیشه اینقدر خلوت است؟ نه، در روزهای تعطیل خانواده‌های زیادی برای زیارت و گردش به اینجا می‌آیند. حرم امامزاده هم در همین روستاست؟ بله، حرم یک مکان تاریخی و دیدنی است. پس حتما باید به با آنجا برویم عجیب است، حیات خانه های این روستا بدون دیوار است این از رسوم رایش در این روستاست حیات منازل و کوچه ها مرز مشخصی ندارد بله، انگار حوز و شیر آب در کوشه قرار دارد خب، اگر دوست دارید به آب گرم زیارت هم برویم بهتر از عجله کنید هوا کم کم تاریک می شود. من چند عکس دیگر می گیرم. نمیخواهم مناظر زیبایی اینجا را از دست بدهم. البته فردا هم می به آب گرم برویم. نه، فرصت کم است بهتر از همین امروز برویم.